بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين اما بعد انزا من درس اساس درس ايه سوره يوسف ايه 34 الله جل شانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم گفتیم اینجا اشاره کردیم ببینید که بین مظلوم و الله جل شانه حجاب نیست پرده نیست الله سجابت میکنه دعوت مظلوم دعای مظلوم چنانچه اینجا در بحث یوسف میبینیم الله فوراً دعاش سجابت میکنه و یوسف را از دست اون زنانی که بهش مک کرده بودن نجات میده فصرف عنه کیدهم اون مکری که داشتن اون زنا به یوسف الله یوسف را از اون مکر نجات میده انه هو السميع العليم این تذکره به همه ما هست فکر نکنید که الله نمیشنوه فکر نکنید که الله نمیدونه یاداوری برای, برای همه ما الله که میشنوه و الله که میدونه که اون چیزی که ما ازش خواستیم به مصلحت ما هست یا نیست برای الله تصمیم نگیر هر چیزی از خدا میخوای مریضی از الله شفا میخوای یا مریضی داری شفا میخوای تو از الله بتلب اون کسی که تصمیم میگیره که شفا بده خود اللهه برای الله تصمیم نگیر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرمین دعای یکی از شما استجابت میشه ما لم یعجل مادامی که عجله نکنه تو برای الله تصمیم نگیر الله میدونه و ما نمیدونیم مهم اینه که ما این عبادت را به نحو احسن انجام بدیم دعای عبادت ما نیازمندی خودمون رو به الله جل شانه اثبات بکنیم ما دست نیاز را بلند بکنیم بار الله همه نیاز من نیاز شفا داریم این عبودیت این بندگی است الله این از ما میخواد و امر استجابت را باید به الله جل شانه و گذار بکنیم ثم بده لهم من بعد ما رأو ال آیاتی لیست جنون نهو حتی حین ثم بده لهم سپس دیدند بده لهم لهم جمعه زلیخا گفت که من زندانش مندازم ولی خب زریخا به تنهایی نمیتونست او را به زندان بیاندازه. زمان و امور دست کسی دیگه بود باید شوهرش و آن کسانی که دروبر شوهرش بودن موافقت میکردن بر اینکه که یوسف را به زندان بیندازن بلاخلی پاپوشی یک چیزی براش درست بکنن که بیندازنش زندان بدون بهانه نمیتونستن زندانش بیندازن پس اونها بعد از مشورت تونستن که راه چاره بیندیشن که به بهانه آن یوسف را زندان بیندازن اونم بعد از اینکه نشانه های الهی را دیدند در براءت یوسف ثم بدا لهم ثم لهم من بعد ما راوا الایات راوا الایات و نشانه ها الله نشانه میذاره بر نجاتت برای تو هر شخصی از ما یک نشانه ی الله بر برایت ما میذاره اونجایی که تهمت و اتهام بهمون میزنن دروغ بهمون میبندن اینجا بحث یوسف به عنوان یک نمونه جون راست راست در دعوتش بهش دیوانه گفتن، شاعر گفتن و الی آخر. این دلداری برای هر مؤمنی هست که استقامت بر روی دین داره. ما نشانه میذاریم در برابر اون ها و تهمت‌هایی که تو می‌بینین. تو را تبرئه می‌کنیم. همونطور که یوسف تبرئه شد، دلداریه. یوسف تبرئه شد اون موقعی که پیرهانش از پاره شد. بینها نشانه ها بود. و همینشین اون جایی که برادران یوسف اومدن، گفتن که را خورده. الله نشانه گذاشت. پیراهن سالم تحویل پدر دادند. نا نشانه ها بود در براءت یوسف و در نجات یوسف الله برای بنده مؤمنش سببی میکنه برای نجاتش اون موقعی که در مصیبت اون موقعی که در امتحان الهی خب اینها با وجود که این نشانه ها را در یوسف در نزاکتش در نجابتش دیدن تصمیم گرفتن که زندانش بکنن حتی حین حین زمان مشخصی نیست یعنی یک مدت زمانی رو مشخص نکرده، گفتن بذارید فعلا تو زندان باشه بذار مدت زمانی حالا یک ماه دو ماه، سه ماه هر چقدر که بخوان و داخل معه سجن فتیان یوسف که وارد زندان شد همراهش معو یعنی باهاش دوتا جوان دیگر هم زندان شدن سجن همون زندان میشه فتیان دوتا جوان اون دوتا جوان خواب دیده بودن قال احد هما اني اراني اعصر و خمره سوال اینجا پیش میاد این سه نفر یوسف و اون دوتا جوان وارد زندان شدن چرا این دوتا جوان فورا یوسف را انتخاب کردن برای تعبیر خواب؟ خواب دیدیم. تو از این همه جمع زندانیان بعد یوسف انتخاب بشه بعد با یوسف تازه وارد زندان شدن نیست که مثلا معاشرت داشتن و هم صحبتش بودن رفیقشون باشه نه تازه با هم وارد زندان شدن ولی نجابتی در یوسف علیه السلام میبینن که سبب میشه بهش اعتماد بکنن یوسف خواب دیدیم آثار نجابت بر تو هست یک ارشادی از الله جل شانو که سلاح و خوبی انسان در شکل مایل انسان اظهار میشه الله آثار اون ایمان رو در سرشت انسان میذاره در چهره انسان الله میذاره چنان چه در چهره یوسف گذاشت که اینها دلیلی داشته باشن یا دلیل و مدرکی گذاشت بر اون علم شریفی که یوسف داشت یا اون مکانت و جایگاهی که درش یوسف بود ما در قصه یوسف میبینیم یوسف علیه السلام دو تا نعمت بهش الله ارزانی کرده از بهترین نعمتاش نعمت خلقت گفتیم پیامبران انتخاب میشن در بهترین وجه از لحاظ صورت و چهره و قدرت جسمی و ویژگی دوم علم اینجا یوسف علیه السلام مشرف شده به علم خواب پس علم خواب علم شریفیه وگرنه این پیامبرش رو انتخاب نمیکرد به این ویژگی خاص خب دو تا ویژگی هست یک ویژگی در مقابل آن امتحان شده سخت نعمت ظاهری انسان امتحان میشه در مقابل مالش در مقابل جمالش اون نعمت دنیوی سخت امتحان شد اسراف زلیخا که سبب شد الان در زندان بیفته جمالش سبب شد که اون دو زنا بیان بهش محرو کنه علمش سبب نجاتشه این ویجگی دو نعمت دیگری است هر دو تا نعمت ولی یک نعمت سببش زندان شدن نعمت دیگر سببش رسیدن به کرسی و تخت پادشاهیه قزانه مصر بهش تحویل بدن علم هم حساب کتاب بلد بود هم تعبیر خواب بلد بود علم او را بالا آورد. بخاطر همین الله جل شانه در قرآن به ما یاد میکنه که این نعمت را از خودمون محروم نسازیم. میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. شما با علم بالا میرید. علم را کم نگیرید. علم. یک آیه شنیدید یاد گرفتید. همون یک آیه را سبب نجاتت باشه. همونطور که یک پیراهن سبب نجات یوسف شد. علم شاید همون یک ذره علم به دردت بخوره علم انسان رو بالا میبره و علم انسان رو نجات میده اونجا میبینیم یک علم تعبیر خوابه که یوسف رو از زندان نجات میده تعبیر خواب میکنه یکی از اون جوونا میره به دربار مصر اونجا به یاد میفته و فرعون خوابی میبینه بعد میگه من میدونم یک کسی تعبیر خواب بلده نکنید علمه این علم شریف سبب میشه که یوسف نجات بیابه از زندان بعد از اینکه با اون ها او را وارد زندان کرده خب دو نفرن دو تا جوانن میان اولیش میاد میگه که اینی ارانی اعسل خمر من دیدم که آب انگور میگیرم انگور خمر به انگور اطلاق میشه منظور اینجا مشروب نیست چون از اون انگور مشروب درست میکردن به خاطر همین اینجا الله جل شانه کلمه خمر استفاده کردن اینجا منظور از خمر به اون نتیجه و حاصل از انگور اسم انگور رو میذاره خمر و یک دلالاتی داره برای خودش اینجا انگور و خمر به اعتبار نتیجش درسته آب انگور رو داره میگیره این آیه اینطوری یه معناش من دیدم که آب انگوری میگیرم خب کی از انگور و خمر درست میکنه برای کی آب انگور میگیرن که خم بشه برای پادشاهان برای وزرا برای بالادستان مشروب که همه کس نمیگه فقیر که رو میخوره پول نداره که مشروب بخوره درسته مشروب مال فقرا نیست مشروب مال اونایی که پول دارن معمولا اینطوریه و یک رمزی تو شعر یعنی الله هم اینجا از این رمز استفاده میکنه خواب همش رمزه کسی که علم خواب رو داره میتونه بین این رمزها جنبندگی بکنه و نتیجه بگیره از این خواب که نتیجهش چی میشه و رسول الله هم صلی الله علیه و آله با اصحابش یاد می‌داد می‌نشست بعد از نماز نماز صبح مثلا فلان چه خواب دیدی میگه این خواب دیدم کسی هست بلده که می‌تونه تفسیر بکنه ابوبکر صدیق نشسته فلان نشسته او بعد تعبیر میکنه می خواب درست نصفش درست گفتی این وقتیاشو درست نگفتی خواب برای خودش دلالت داره مثل صفیه که میگه که خواب دیدم که خورشید یا ماه وارد منزلم شده بعد میگه که همین که به شوهرم گفتم شوهرم لگدم زد چون میدونسه تعبیرش خب یک نوری میاد یک شخصی وارد زندگیش میشه که سبب میشه که اون شوهر نابود بشه خب بعد شوهرش صفیه متوحیه که شوهرش یهودی بود و پدرش هم یهودی بود کشته میشن هم پدرش هم شوهرش بعد کی باش ازدواج میکنه اون ماهکی که تو خونهش اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم اون شوهر با توجه به اون رمز تعبیر خواب و دونست پس میتونه انسان این علم را کسب بکنه این علم اقتصابیه ولی خب اینجا الله یوسف را انتخاب کرده الله داره یادش میده ما یاد میگیریم با توجه به خوابهای مثل یوسف مثل خوابهایی که رسول الله سرساب تعبیر کرده ما هم نمیتونیم بدون دلیلی از قرآن خواب را تعبیر بکنیم باید ازش رمز را برداشت بکنیم همچنان که اینجا الله برای ما دلالتی گذاشته در یک میوه که چگونه به نتیجه برسیم یک انگوره دیده که یک شخصی داره آب میگیره خب بیسوف باید برداشت بکنه که نتیجه و معال این خوابه چیه و این شخص چیکاره میشه و چی میشه بعد از دیدن این خواب و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خوب خبزه دیگری گفت که من دیدم بر روی سر خودم نان رو حمل میکنم نان آردالا گندم اون چیزی که نتیجه اون نان باشه تاكل و, و منه پرندگان از اون روی نون ها میخورد یا گندمی که روی سرش میخورد لا اصل خبز که همون نانه ولی خب نان معمولا از گندم و قاطر می مثل مو قضیه خم یک دلالتی داره اینجا همون گندمش همون آردش همون پرندش اینا همه رمزه سه تا رمزه چنانچه در انگور هم رمز بود و خمرش نه به تعویله ایوسف یوسف این خبر به ما بگو این رمزا که در خواب دلالت بر چی میده چون نمی و هیچ کسی نمیدونست دونست یوسف انتخاب شده پس خواب ها تعبیر دارن خواب بدون تعبیر نیست گفتیم در افتاده سوره یوسف الله اینجا بر وحدانیتش بر وجودش دلیلی گذاشته در این سوره یوسف یک از عدله چیه؟ خواب اگر الله نبود اگر الله از آیانده نمی دونست پس چطوره که یک روز دو روز یک ماه قبل ما خواب می بعد خواب به وقوع می پس چون الله وجود داره علم سابقش هست از قبل بهت داره خبر میده پس الله که میداند از قبل بر تو الهام میکنه و اون به وقوع میپیونده این دلیل بالاتر از این اینجا دو تا شخصن و اون دو تا تعبیری که هم یوسف میکنه هر دوتا تا هم درست در میاد خب از قبل خواب دیدی بودن یوسف که گمان زنی نکرده بود یوسف یقینا خبر داد به اونها و مطمئن به اون علمی که داره شاید ما زنی تعبیر بکنیم ولی یوسف قطعی جواب داد به حاطر این که وحش شده بود برش الله که یادش میده این نراک من المحسنی ای یوسف ما شخص محسن و خیرخواهی میبینیم نکنی کلمه صالح به کار نبود این نراک من الصالحی صلاح ظاهری داشت گفتیم که اینجا یک کلمه استفاده میکنه الله در تعبیر حرف اون تا جوان که دلات بر رفتار یوسف علیه السلام در زندان داره ازش خیرخواهی دیدن در زندان میرفت کنار مریض مینشست میرفت کنار اون شخص که افسرده و دلتنگ و غمگین بود مینشست دلداریش میداد اون کسی که محتاج بود دست زیر بغلش میزد کمک به این و اون میکرد احسان میکرد خیرخواه دیگران بود خوبی میکرد این خوبیه سبب شد که انگوش نما بشه سبب شد که مردم یک توجه خاصی بهش داشته باشن این جوان ها شیفته ای اخلاقش رفتارش بشه. اخلاق هم میشه که مردم جذب ما بشن. اینجا الله یک دلالتی برای ما میذاره در این پیامبرش. خوبی تو به دیگران سبب میشه که مردم قدرتو بدونن. قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاویله قبل ان یاتیکما. بن هند نفر می یوسف علیه السلام از اون جایگاه علمی شریفش که الله برخوردارش کرده بود. لا یاتیکما طعام در خواب شما غذایی نمیبینید. الان میخواد میوه باشه، میخواد نان باشه. هر چیز خوردن میخواد گوش باشه میخواد اون گوشت ماهی باشه هر چیزی که هست از خوردنی ها طرزقانی که انسان لخر با اون معمولا غذا برای روزی انسانه یک اشارهی داره به اینکه اصل غذا در اینه ما مثلا خیلی ها از ما واهمه داریم از اینکه در خواب ببینیم دندان افتاده فورا طرف میگه آه حتما کسی میمیره دیگه از اون لحظه که میبینه این دندونش افتاده دیگه این شخص از غم، اندو، غصه حال نداره نه اینطوری نیست دندون افتاده دلالت بر مرگ کسی نداره این اشتباهه دندان وسیله هست برای طعام، برای غذا گلهش بکنی بستگی داره که این دندون تو خودت بکنی، تو کف دستت بذاری بستگی داره که خودش بیفته، کجا بیفته همه اینها دلالت داره ارشاده، دلیله. اس برای اینه که برای روزی و آسون کردن روزی گذاشته که خودت میکنی یعنی یک شغل جدیدی برای خود داری ایجاد میکنی که با اون دندون بتونی روزی تو در بیاری و صدالالت خوبی داره وقتی انسان میکنه که دستش میذاره. این من فقط یک اشاره ای دارم چون این خواب دندون خیلی ازش واهمه دارن اشخاص افراد. قرار بر این نیست که اون چیزی که به ما گفتن یک معنا داشته باشه نه خواب دندانه ولی که به نسبت افراد و نوعش متفاوته یوسف علیه السلام به این میگه میگه که نها کنید خواب غذا متفاوته انگور با خورما با موز اینا همه یک دلالت خاص خودش داره به نسبت رنگش به نسبت حجمش به نسبت جایی که درش میرویه بیرون میان اینا همه مثل قضیه اون دلیل هایی که میذاشت برای گنج هاشون قدیم ها رمز میذاشتن که اون کجا مثلا گنجشون یا تله هاشون قایم کنن که بعدا مثلا الله تعبیر خواب هم مثل گنج براش نشانه ها گذشته که تو بتونی بهش برسی کار هرکس نیست یک حرفه هست یک حرفه شریفی یک علم شریفی یوسف علیه السلام میگه من این علم شریف رو دارم مگر اینکه یعنی خوابی از انواع غذا نبید مگر اینکه من تعبیرش را به شما بگم نباخش خبرش از اون تعبیرش بگم قبلا یاتی یاتی قبل از اینکه یعنی اون حادثه رخ بده من دلالت اون قضاها را بهتون بگم ذالکما مما علمنی ربی این چیزی هست که الله به من یاد داده اکتسابی نیست الله با واموشر فضل الله به یادوردن اون نعمت الهی که بهش ارزانی داشته انی ترت ملته قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرت هم کافرون من ملت قومی را رها کردم که ایمان به آخرت ندارن الله یا منظورش برادرانشه یا منظور اون سرزمینی که درش زندگی میکرده اگر به نسبت برادرانش باشه به اعتبار فعلشون اگر اونها نه که اصلا مطلقاً ایمان به آخرت ندارن چون فرزند پیغمبری بودن از پیغمبران بران الهی ما هم کوب له مقصود این که اونها آخرت را بیاد نداشتن با من این کارو کردن یعنی اومدن او را در چااهی انانداخن راضی به زلم شدند. زل تاریکی روز قیامد اگر جلو چششون بود اون روز آخرت به خودشون اجازه نمی که این کار انجام بدن پس ضعف ایمانشون سبب شد که یوسف را در چاه بندازن ضعف ایمانشون به روز آخرت اگر اون ایمان به آخرت قوی می شد در دل آنها به خودشون اجازه نمی دادن ظلم بکنن پس ما هم همینطور اگر به خودمون اجازه دادیم که ظلم بکنیم به کسی به فردی ما هم این ایمان در ما تضعیف میشه پس دنبال تقویت ایمان به روز آخرت باشیم که مثل برادران یوسف نشیم ضعف که کم میشه که ما این چنین بشیم این ارشاد الهیه و یا اینکه منظورش اون سرزمینی هست که درش زندگی می‌کرده که مردمش مثل قوم لود که ایمان به روز آخرت نداشتن و اون عمل فاحشه انجام میدادن و در مقابلش الله عقوبتشون کرد غیر از اون عقوبت اخروی که بر اونها در پیش روی اونها گذاشته در روز آخرت با اون عذابها و عقابهاش خب پس این خلاصه و چکیده از این آیات بحثا بیشتر از این ولی بله خب من سعی می‌کنم که دیگه گوزینش بکنم اون مهمترین فوایدی که متعلق به این آیات صلی الله علی محمد و علی محمد